السلام عليكم ورحمه الله الله ربي واتوب اليه وفوضت امري الى الله ان الله واسع بالعباد ابعوض ربكم حمزات الشيطان اللئيم الراجم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نتوصل عليه من توكل عليه ونصلي ونسلم له حبيب الله العالمين العبد المعيد والرسول الخاتم لمجد الذي سميت في السماء باحمد و فل عرضین مع بالقاسم مصطفى ابن زهراء محمد. الله هماسال الله محمد. و الله تیبین التاهرین المعصومین المکرّمین و لعنت الله على اعداهم جمیین من الان الغیومی يوم الدين آمین یا رب العالمین اللهم کن لبقیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك علیه و علی و حذف ساعت و فی كل ساعه ولیا محافظا مقايد و مناصلا و دليل معينا حتّى تسكنه و رضكت او علمت متى او في حدت هىلا برحمتى يا رحمى الرحمى نتخدم صاحب مقدس قطبى لاميم كان وجود نازل ناز صاحب لاسرب الزمان تجل در ظهور پول باركىشون و تسلاليدل مباركىشون صلوات دیگري رو هم نيايت بفرمایید تذکرم رو دوباره ارز کنم که موبایلاتون رو زحمت بکشید اگر که روشن خاموش کنید یا روی حالت بی صدا بذارید که خدای نکرده برای جلس مزاحمتی ایجاد نکنه دیشب آخرین حرف ما این بود که وجود نازنین عبی عبدالله قیامش که برای اصلاح جدش بود اینی نیست که ما فکر میکنیم اگه نگفه کنی ابی عبدالله رفته که یده پا برهنه رو ملاسه کفش باشون کنه یده گرستنه رو سیر کنه یده نمیدنا این حرف ها نیست ممکنه که یه بهانه یا بخشش همین باشه ولی خواسته ابی عبدالله و حقیقت داستان این نیست دیشبه هم کردم مقصود و مقصد با هم فرق میکنه مقصد ابی عبدالله قیام بر علیه بنیومه و شهادت بود اما مقصود ابی قیام کرد شهیدم شد بر علیه بنی و هم بالاخره شورید و بیعت اونها رو نپذیرفت، اما این مقصود عبی عبدالله نبود یه مثال زدم که رو دوباره یادآوری کنم بهتون گفتم یه قطار داره بیره مشهد من و آقای بغل هم داریم میریم جفتمون مقصدمون مشهده مقصود این آقاینه به زیارت علی ابن موسر رضا علیه السلام و من قصد همینه برم تجارات زرش بکنم مثلا جفتمون مقصدمون مشهد مقصود ما دو تا با هم فرق میکنه عبی عبدالله تشریف بردن به کربلا شهید هم شدن در مقابل بنی اومعی هم استادن. اما حقیقت داستان اینه که مقصود عبی عبدالله این نیست چون این خیلی کوچیکه برای وجود نازنینش اگه فکر کنیم همه خواست عبی عبدالله به هم زدن، اومیه باشه این نیست حرف خیلی بالاتر از این. حالا یه بخشیش که اشاره به تاریخ باشه رو کار ندارم یه مقداری هم راجب تاریخ به تاریخ اینکه چرا هد رفت صحبت کردم. اما حقیقت این بود که یه دی ای که نمونن در تاریخ و ما اگر مثال بخوایم بزنیم نسبت به اونا و نمونه های این چنینی باید حرف بزنیم و می شود گفت که اینها درسن برای ما و برای کسانی که در دنیا زندگی می کنن. یه نمونهش مثلا زبیره این مقدار راجع به زبیر براتون حرف بزنم زبیر پسر عم پیغمبر است پسر پیغمبره درست آقا پسر پیغمبر نسبت داره بابایگر تو جنگ ها چی؟ یکی از بهترین جنگ است که تاریخ شما شعبت مطالبه فرمین؟ زوبه جزء کسانی بوده که خیلی در تاریخ ازش قبل از این اتفاقاتی که بعد از رهلت پیغمبر بیفته حرف زدن پیش قراول پیغمبر در اکثر جنگ من خواهش میکنم با هم حرف نزنید دوستان آره صحبت کنید بیرون جلسه اونی که اتفاق افتاد اینه که زبیر با اینکه پیش قراول بود سیف اسلام بود شمشیر اسلام بود همه چیز رو در تاریخ که از اون میخونید فقط سراسر افتخاره برای همینه که برادران اهل سنتتون با این افتخارات دچار چهار گمراهی شدن یعنی هنوز فکر میکنن زبیر بالاخره رضی الله عنه اونجوری فکر میکنن راجبش صحابه پیغمبر میدونن خیلی بهش اعترام دارن یه روزی پیامبر وجود آزهن هم و زبایر ستایی نشسته بودن زبایر به صورت هم بیرن مومنین نگاه میکرد زده بود پیغمه فرم بودن زبایر علی رو دوستش داری؟ گفت بله یه بله رسول الله خیش منه پسر ام منه پیغمه فرم بودن زبایر یه روزی مقابل علی میستی در حالی که اون روز علی مثل همیشه بر حق است و تو اون روز بر باطل از خودت من یا رسول الله بله شما یه روزی مقابل علی وای میستید باورش نشد این حرف پیغمبر فکر کرد یه تعارفه یا پیغمبر میخوان اینجوری بگن که زبیر رو تحریک کنن برای خلاص همراهی با امیرالمومنین بی تاریخ تاریخو بذاریم کنار ببین بعد از نبی اکرم نبی اکرم که از دنیا رفتن سقفیه اتفاق افته. یه یدی آمدن مجبور شدن بیعت کردن بعضیا با تهدید بعضی‌ها حالا با تطمی کار ناداری بیعت کردن تو این تعدادی 17 18 نفر بودن هیچ جوری حاضر نبودن بیعت کنن یعنی وقتی حساب میکردن خودشون رو اولا میدونستان به عبی بکر. یعنی هر جور فکر میکنن میگن آقا علی نه من که بهتر از ابی بكرم من خودم که میدونم بیشتر از این میفهمم کیان؟ تل هست زبیره سلمانه مقداد مالکه اماره خیلی بود یه دایش نفر تو مسجد بیعت دارم بیاد این هم نمیخوان بیاد کنم چه کردن؟ جمع شدن چه کنیم؟ گفتن تنها راهش اینه بریم یه جایی که در اون خونه نمیرن. اینا هر جای در یه خونه نمیرن کجا؟ در خانی فاطمه زهرا اینا هر چقدر آده بدی باشن در خونه فاطمه نمیرن در خونه فاطمه در خونه پیغمبره. هر روز صبح میاد و سه رو بروش میگه السلام علیکم یا اهل بیت نبوه یه انقدر جسارت ندارن در این خونه بیان آمدن در خانه هم برن در زدن حضرت درواز کردن بله علی جنران به ید میگیرن ما میتونیم بیایم این تو متحسن بشیم بله شرط داره چیه؟ به شرط اینکه هرچه که دیدید دم برنایه هیچه ها چی دیدی؟ چشم میپذیریم آمدن تو حیات منزل متحسن شده اونجا نشست دوبار آمدن در خانه امیر که شما راجبه خلاصه آتیز زدن در شنیدین وقتی بود که یک حدیثی رو جل کردن اولین حدیثی رو که بعد از وجود نازنین نبی اکرم جل کردن این حدیث بود که هر سه روز در جمع مسلمین دیده نشود باید نزدیک درب منزل او آتش روشن کرد تا دیگران او را بشناسند. اولین حدیث بود به پیغمبر جل کردن هرگاه کسی سه روز در جمع مسلمین دیده نشود باید نزدیک که در به منزل او آتش روشن کرد تا شناخته شود. بینصافه آتش هم خیلی نزدیک در روشن کردن خیلی آوردم نزدی روزه نمخوام بخونم دوم بود دفعه اولی که آمدن در خانه امیرالمومنین وقتی بود که اینا متحسن بودن در زد ملعون دو عالم مقیر لعنت الله آله خود امیر در رو باز کرد یقیه امیرالمومنینو چسبید هلش داد تو خونه گدارن تو مسجد بیعت میگیرن تو آدم تو خونه جمع کردی اولین کسی که در حمایت امیرالمؤمنین دست به شمشیر برد از در تاریخ زبیره. تا یقیقه امیر رو دست مغیره دید دست برد به غلاف شمشیر شمشیر رو کشید که خلاصه بزنه به مغیره حضرت فرمودن من با شما شرط کرد هیچ کار نکنه شمشیر قلاف کن. کنه شمشیرشو قلاف کرد یه حاشیه بریم کنارش وقتی این اتفاق هم شد اومدن بیرون گفتن سلمان تو با علی خیلی نزدیکی سلمان من اهل البیت یکی از اولیای خدا خوابه شدید دید سلمان عمویش مشکی سرشه خوابش گفت سلمان بگی تو سیدی که بچه پیغمبر هستی تو خلاصه از اصحابی گفتن نشنیدی پیغمبر فرمودن سلمان من اهل سیادتید دیگه تو بچه پیغمبر باش. یه بحث گفته سلمان تو از همه ما به علی بیشتر علاقمندی. اینقدر علاقمند بود که روزها میره بالای مدینه مینشست از بالا به در خانه امیرالمومنین نگاه میکرد. اینق دوست داشت. مقداد آمد مسجد صبح بود. باران آمده بود. کف زمین خیس بود. دید جاپای امیرالمومنین در مسجد یه جاپا بیشتر نیست اونم جاپای علیه گو چه وقت خوبیست برم با علی خلوت کنم آمد تو مسجدی سلمان هم نشسته گو سلمان تو کی اومدی؟ جاپای علی فقط بود گو من هر جا علی پامیزاره پامیزارم یه جوری را نمیرم که خودم جاپایی بمونه اینقدر ارادت داشت سلمان اون موقعی که یقیقی یقی امیر امیرالمؤمنین تو دست مغیره بود تو چرا آرام بودی هر کسی محب علی باشه به هم میریزه که من از خودم چیزی ندارم علی بگه بزنین میزنین علی بگه ساکت باشید ساکت میش. اینو چیزیست که اما خواستن اطاعت یعنی کاسه از آشداختر نشدن المتقدم لهم مارق و المتاخران هم زاهقاف یه قدم جلو یه قدم عقب اقب مالک اشتر وارد خیمه معاویه شد در جنگ سفین بین مالک و معاویه فقط فاصله ی. یک توهر شمشیر بود یعنی بلاخره اون گردی شمشیر بشکن توهر شمشیر توهر شمشیر بشکن شمشیر. به یک اندازه اینجنی فاصله بود تازه نه فاصله که بخواد شمشیر شمشیر مالک بالا بود اگر پاین پا میآورد فرق معاویه رو به دونیم میکن, منادی صدا زد مالک علی میگه جنگ رو رها کنید شمشیر رو بزن مالک هیچ اینجا نیست مایمو ما معاویه بزن تمام کن من بر دلم که شمشیر نمیزن من برای علی شمشیر میزن الان من معاویه رو بکشم که خلاف خواسته علی عمل کردم این بشه که دیگه برای دلم من قراره برای علی بزنم اگه خیر هرچی دلی بشه که دیگه مفگرونه اونه به درد نمیخوره آقا روزه برای شما ایراد شرعی داره کلیت ناراحت الله حرف پزشکا گوش نکن در هر تری باید خودش به این اعتقاد برسه روزه برای ضرر داره آقا کلیت این مشکل رو آب نمیخوری مشکل پیدا می‌کنی شرعاً شما باید روزه‌تو بخوری دستور برای شما اینه میگه دلم نمیاد بر دلش روزه میگیره برای خدا نمیگیره ولی خدا دستور داده شما رو بخوری زیاد میشنوید از این حرفا تو جامعه ما دلی شده اسلام دلم نمیاد دلم اجازه نمیده مادر 40 درجه تب داره هیچی هم تو خونه نیست شلوار شیرازی رو میپوشه و پیرهن میپوشه کجا هیئت بو مادر 40 درجه تب داره شب سومه دلم نمیاد که نرم که تب داره خوب میشه دیگه نفهم نشه اصلا اسلام نشنا دست از اول یه تجدید نظری لطفا اصلا نفهمید دلم نفهم هر کی وظیفه وظیفه‌ش مالک بزن مالک نزن بگی سلمان به اینجا میرسد چون اطاعت داره و یادتون باشه ما هرگز مثل معصومی نخواهیم شد تا روز قیامه هر کیم بگه مزخرف میگیم اصوه ما هستن ولی ما مثل اونا نمیشیم کان رسول الله اصوتن حسنه قال بله بلیتری ولی من میشم رسول الله میشم امیر المومنی میتونم هرگز. منو شما بین یک فاصله ای دست و پا میزنیم از مسلمانی تا سلمانی یعنی از بین مسلمان شدن تا سلمان شدن ما اهل بیت میتونیم بشویم ولی اهل بیت نمیتونیم بشیم ولی این دیگه بالاترین درجه است اگه کسی سلمان بشه سلمان که داریم راجعش حرف میزنیم استثناء تاریخ بشریت غیر معصومی که به خانواده وی هم وس نیست اما شد من اهلل بیت پس بین مسلمانی و سلمانی وظیفه ماست و هر کسی هر چقدر در خلاصه تلاش این راه تلاش کنه نتیجه بهتری کارتون کارم نباشه رد شیم سلمان تو چرا قد آروم بودی من علی میگه حرکتی نکن حرکتی نمیکنه. یه قدم بریم جلو ریختن در خانه امیر و با اون حدیث جعلی که عرض کردم آتیش زدن دست امیر بستند بستن بردن زبیر رسید دید امیر دارن تو کوچه میکشن فریاد بنی هاشم زنده ای دو دست علی رو بستن ملعون اون دوم با یه سنگ بزرگی از پشت زد تو سر زبیر سر زبای شکست افتاد وسط کوچه امیرالمومنین مامرین بردن تا اینجا دنبال علی آمده یه قدم بریم جلوتر آمدن علی از حقت نکول نکن حدقه یه تلاشی براش بکن به چی نشستی؟ بلند شو خواستان بهشون نشون بدن که فایده نداره فرمودن هر کس می برای حق علی قیام کنه فردا بعد از نماز صبح سرش رو از ده به تراشه کفن بپوشه شمشیر رو همایل کنه این نکته بگم تو نقاط تاریخ دوتا نقل مختلف داره بعضی کفن به بوشه رو آوردن بعضی کفن رو گوشه رو نیاوردن. سر را به تراشد و حلق کند و شمشیر همایل کند تو هر دو نقلش هست هر کی میخواد با علی باشد سرش رو حلق کنه شمشیرش حمایل همایل کنه صبح بعد از نماز تو مسجد چهار نفر اومدن سلمان مقداد عبیذر زبیر سلمان مقداد ابیزر زبیر تا اینجا اومد علی بن ابی تله فرمودن با شما چهار نفر کاری از پیش نخواهد رو من میرم خونه نشین میشم شما برید دنبال زندگی تو بیست و چند سال امیرالمؤمنین خانه نشین شد چی شد؟ همه حوض شدن با زمان اول دومی بعد نبود نسبت به سومی. سه دیگه شمشیر رو خلاصه از رو بسته بود تو تاریخ پختی نگاه میکنی که اینا چیکار کار کردن میگه برنامه هدفمند داشتن از زمان خلیفه اول هر کس رو استاندار هر جای میکردن حداکثر اکثر یه سال سلمان برو مصر عبیزر برو ایران حد اکثر یه سال بعد جا به میکردن سیره ایس بانکا دیدین جا به میکنن که ریشه پیدا نکنن از اینجا برو اونجا تو از اون شعبه بیا برو اونجا تو از اینجا برو مصر تو از مصر بیا برو چه میدونم بصر از بصره تو بیا برو یک سال احدی رو بیش از بیش از یک سال اجازه ندادن الا یزید بن عبی سفیان برادر معاویه ده سال حاکم شام بود تا به درک واصل شد ده سال حاکم شام بود تا در اثر بیماری به درک واصل شد بعد از او معاویه رو به استانداری شام منصوب کردن بیس سال نخشه یه دیگه ولی چرا بقیه یه سال توی ملاقاتی که معاویه با عثمان داشت و آمده بود که بعد از که محاصره کردن خونش رو حتی آب رو هم به روش بستن که امیر مشک برداشت امام سن، امام حسین، ابل فضل، همه دنبالش را با مشکگاه با من طرف خانه ثمان دیدن نمیشه دیگه علی اومده ونی آش دیگه جحت داره ویس راه رو کنن آب و برد رسون به خانه عثمان دشن نباش ملاقاتی که شبانه معوی بااشت آمده بود قبل از کشته شدن اصمان دیدش اسمان میش که خدا لعنتت کنه هر چی به سر من آمده به خاطر توه اینه که مردم الان ناراضیان به خاطر توئه همه دارایی های مردم ها ازشون گرفتن بمانند کار به جایی رسید که مسعودی اهل سنت از, نو... از نویسنده های بسیار معروف اهل سنت ماشیعان هم معمولا به کتبش ارزم به حضور شما استناد میکنیم صاحب مروج و ذهب کتاب معروف تاریخی است مسعودی در مروج و ذهب مینیویسه 500 سال از زمان زبایر گذاشته ما هنوز میریم کاخای زبایر رو بازدید میکنیم چه پولی براشون بجام اینا رو چجور تطمیعشون کرد همه شمشیر گذاشتن زمین شکم ها بزرگ شد تمام آرمان ها یادشون رفت یادشون دیگه اونا نبودن دیگه اولی ها نبودن اون سر صداهای اول خلاس حمایت از امیر المؤمنین دیگه تمام شده بود الان دیگه بالاخره تشکیلات و خونه و مرکب